الرحمن الرحيم علم معاني به فضل خداوند سبحان تا قاعد ۲۷ بحث چی بود؟ البیان بود الان رسیدیم به علم المعانی علم معانی. تقسیم کلام خبر و انشان تقسیم کلام به چی و به خبر و انشا آقا بله. الان رسیدیم به علم معانی تقسیم کلام به خبر و انشا کلام یا خبر یا انشا اینی که من میگم آقا باران بارید زید ازدواج کرد بکر تصادف کرد آه این میتونه خبر باشه و میتونه چی باشه؟ انشا باشه حالا بیایید اول شروع قواعد طبق روند خودمون همین خود جمعه آره الان میاره شما بیایید تو قواعد القواعد قائده بیس هشتم کتاب بیایید الکلام و قسمانی کلام بر چند قسمه؟ بر دو قسمه خبرون و انشاءون یک خبر دو انشاء فالخبرو ما یسحو ان یقال این همون چیزی که تو نحو می راورده فالخبرو ما یسحو ان یقال لقائله انه صادق فیه او کاذبون خبران است که صحیح باشد که به اش گفته شود راستگوست یا دروگگو است. خبران است که بشه گوینده اش را متصف به صدق یا کذب کرد موقعی که ما میگیم آقا شخصی میاد به ما میگه زید رفت بندر ما میتونیم بگیم ای آقا این آقا اگر واقعا رفته باشه زید به بندر داره راست میگه اگر نرفته باشه دروغ, دروغ میگه پس میشه گویندش رو به بگویندش گفت که آقا راست میگه یا دروغ میگه چیزی شما قبلا مستین این از قسم خبری بله اون مثالا مثالایی برای خبر بودند فالخبر ما یصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او کاذب خبران است که صحیح باشد گفته شود بگوینده اش که این گوینده صادق است در این سخنش یا دروغ کوست فان كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا اگر کلام سخنی که گفته است مطابق با واقعیت باشه گوینده صادق است و ان كان غير مطابق له فكان قائله كاذبا اما اگر سخنش مطابقت نداشت با واقعیت گوینده اش کاذب است دروغگوست صدې بعد کلیه مثلا ما خبرای الله دریم که کی کیز به در اون نیس در حال که خبرم هست نه درسته چطور میشه مال الله متعال کون داستانش کاملا جدا از خود کتابارو هم که بیای باس کونی اینو کلا چکار میکنند استثنا میکنند نی وجی مثلا استثنا چطور مگو که کی وراه جز این خبر میشه خود درسته ولی نمیشه یک جای محاله که مالش اون چه باشه دروغ باشه مال الله و رسول تو هر کتاب بیاری میگه محال این گوینده چه باش خبرشو نمیشه توصیف بیچی کرد بلکه به همان شکلی که گفتن باید حمله بر طبق واقعیت هست طبق چی است؟ واقعیت است. پس سخن من سخن شما و سخن اون گوینده دیگر آه، الله و مأثور في غنبر صلى الله عليه وسلم ودار صنعه جوداء، الكلأ بس، والإنشاء إنشا كده ما لا يصح أن يقال لقائله إن شاء آنس كي صحيح ميز كي بيجوا يندش كفتشرد إنه صادق فيه أو كاذب نمیشه بی گفت که صادق است یا مثلا آقا شخصی به شما میگه چای بخور تو که نمی‌تونی بگی آقا دروغ میگی یا راست میگی داره تو رو میگه آقا چای بخور آخر حصول خبری رو به شما نگفت که حاصل شده یا حاصل داره شما رو میگه آقا چای بخور خب تو داری دروغ میگی بله لیکل بس قایده بسنه پس خبر یا کلام ك... یا خبر است یا انشا توضیحش رد شد ادامه بحث قا... قایده بسنه هم جمله من جمل الخبر خبر و انشای روکنان هر جمله از جمله های خبر و انشا دو روکن داره چند روکن داره؟ یک محکوم علیه محکوم علیه و محکوم به موغیق میگیم زیدون قائمون یکی محکوم علیه یکی محکوم به و یو الاول الولو مصندن الیه اولی که محکوم علیه بود مصند الیه گفته میشه زیدون و ثانی مصندن به دو مصند گفته میشه یا محکوم به متوجه شدید؟ موغیق ما مگیم مو زیدون قائمون پس زید میشه مصند اله و قائمون میشه و ما زاده على ذالک غیر المضافه اله وصله فهو اگر قید اگر اضافه بر مسند و مصند اله بود اونو میگن قید اگر اضافه بر مصند و مصند اله در جمله کلماتی اومده بود رو میگن تی؟ قید باید. حالا بیایید رویه بحث اصلی. جو سات غیر مزافن الیه و سلام اگه سلامون موصول السلامی مانگوریشت؟ آردگی سلامون جمله که بعد از اسم موصول میاد. غیر از مزافن الیه و سلام. هم مزافن الیه مزافن الیه قید نیست. موغی امامی میگیم؟ غلام زیدن آقلون غلام زیدن آقلون غلام میشه مسند اله آقلون هم میشه چی؟ مسند دیگه زید قید نیست تو اجید شو دیگه لان؟ جز یا همینه الله پس آنچه که اضافه بر مسند و مسندون اله باشه چئ قید جز البته مضاف اله و سلسله کلاچه منظور قید دیگه بدون قید اون معنا فهمیده میشه آره دیگه یعنی منظور اینه که اونا رکن اساسی دیگه نیستند. نیستند از کلام اونا جز رکن اساسی کلام نیستند, نیستند. بیایید در قسمت الامثله تقسیم کلام به خبر و انشاء تقسيم خبر بكلام و بإنشاء الأمثلة قال أبو إصحاق الغزي أبو إصحاق الغزي ميجي إن واجهكار چي ميجي؟ ميجي لولا أبو الطيب الكندي ممتلعت مسامع الناس من مدح ابن دان در این مثال ابو اسحاق الغزی میگه اگر چنانچه ابو طیب نبود اگر چنانچه آقای متنبی نمی بود، پر نمیشد شد گوش مردم از مدح آقای ابن حمدان از مدح آقای صف و دوله. کسی که آقای صف و رو مدح کرده به گوش مردم رسونده تبلیغاتش رو کرده کی بوده؟ ابو طیب متنبی بوده متوید شدید؟ خب در این مثال داره ابو اسحاق کنده چی میگه؟ کسی که فضائل سف و رو بین مردم پخش کرده آقای متنبی بوده ولی در این مثال ممکنه آقای غزی راست بگه و ممکنه کچه بگه اگر حرفش طبق واقعیت واقعا متنبی این کار رو انجام داده اون موقع صادقه و اگر طبق واقعیت نباشه اون موقع چیه کاظبه پس این شد خبر این کلام شد از دوی نوع خبر خل بياي مثال بعدي، وقال أبو الطيب، أبو الطيب قال ين أبو الطيب واجل كسم يخدا عش بخونه شرح خل خوب باركتابه مفردات شو شرح دالان، ولكن يسم يخاد لغة عربية شقية وقال أبو الطيب، أبو الطيب قفته لا أشر أبّه. إلى ما أبيت على ما فات حسرانا ابو در این مثال میگه لا اشرع اب ما لم میگه من سر بلند نمی کنم یعنی همین که شما سرتونو بالا رو گرید تا یه چیزی رو نگاه بکنید تطلع کردن لا اتطلعو همین که سرتونو میبری بالا تا یه چیزی رو نگاه کنی اینو میگن چه؟ اشرعباب اشرعبو دیگه همون متکلم وحدش هست اشرعبو نشرعبو میگه لا اشرعبو الى ما لم يفت تمغا میگه من سر بالا نمیبرم برای به چیزی که از دست ندادم از روی تمع میگه من از روی تمع حرص نمی ورزم به چیزی که فوت نشده است از دست نرفته است ولا لا ابی تو حسرانا ما حسرانه و همچنین بر چیزی که از دست رفته است حسرت نمیخورم دیگه با کل جملش معنی میکنیم <تصفيق> یعنی بر آنچه که از دست رفته حسرت <تصفيق> نمیخورم خب اینجا هم اگر آقای در این, ب... در این مثال متنبی به ما چی میگه متنبی به ما میگه که آقا از اون حالت خودش راضیه قانع. این عادت نداره که بر سر بکشه نگاه بکنه به اون چیزی که میاد و همچون این عادتش این نیست که پشیمان بشه بر اون چی که از دستش رفته ولا ابيت على حسرنا میگه من حسرت چیزی رو که فوت شده نمیخورم برش پشیمان نمیشم خب اینجا احتمال داره که دروغ بگه و احتمال داره که راست بگه پس این هم شد چی بله اما در مثال بعدی ببینیم و قال ابو العتاهیه ابو العتاهیه میگه ان البخيل وان افاد غنان لا ترى عليه مخايل الفقر میگه انسان بخیل اگرچه استفاده کنه که غنی هست لا ترى علیه مخايل الفقر البته که برش علائم های فقر برش دیده میشه علامت های فقر براش چی میشه اگر این آقای بخیل بیاد استفاده بکنه که چیه استفاده بکنه که غنی هست اما علامت های فقر برو دیده میشه یا میتونیم بگیم لتر علیه مخایل الفقر اینجا الان مجهول مخایلو شده چون نائب فایله میتونیم بگیم لتر علیه مخایل الفقر تو میبینی برو علامت های فقر رو. بعضی از لسخ اینو لترا آوردند ولی این اینجا او آورده لتره علیه مخایل الفقر که مجهولش آورده خب توخ مجهول که معنیش کنیم البته که دیده می شود بر او علامت های فقر در این مثال آقای ابو الاطاهیه میتونه که کاذب باشه و میتونه که صادق باشه در این مثال میتونه ابو الاتحیه در ادعایی که کرده صادق باشه و میتونه که صادق نباشه داره یه چیزی به شما میکرد خب وقال بعض الحكماء لابنهی حکیمی بفرزندش گفته یا بونیه تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحديث فرزندم خوب گوش کردن را همان همانطور که خوب سخن گفتن را میاموسی همانطور که بلدی حرافی کنی گوش کشیدن و هم یاد بگیر این دیگه اینجا نمیشه که بگیم احتمال صدق و وجود داره داره دستور میده آقا خوب گوش کردن و یاد بگیر میشه بهش بگیم آقا تو داری دروغ میگی؟ آقا موقعی که من دارم دستور میدم آقا این کتاب بردار خوب یاد گرفتن و خوب گوش کردن و یاد بگیر متوجه شدی مولوی؟ أما مثال بعدي وأوصى عبد الله بن عباس رجلا فقال عبد الله عباس رضي الله عنه مردي رو وسيط كارت قفت لا تتكلم بما لا يعنيك انشرا كبتو مرتبط نيست بتو ندارت درش سخن مقو در رابط حرف مزن ودع الكلام في كثير من ما يعنيك حتى تجد له موضعا وكلام رو سخن رو در بسیاری از آن جاهایی که به تو رب داره ترک کن تا زمانی که موقعیتش رو گیرت دیاد وقتش مناسب باش جایش جای درستی باشه. یعنی حتی خیلی از اون جاهایی که به تو رب داره حرف نزن تا این که متناسب با حال و جایگاه باشه خب اینجا هم نهیه داره میگه حرف نزن با آن که به تو رد خب این هم نمیشه این خبر خبری رو البته این منظورم خبر فارسی ها همچنین کلامی رو تصدیق یا تکذیب کرد و قال ابو الطیب ابو الطیب میگه لا تلقى دهرك إلا غير مقترص ما دام يسحب فيه روحك البدن بدا روحك البدن هنا میگه تا جان در داری به روزگار بی اتنا باش غیر, غیر مختلف یعنی بی پروه بی اتنا بی باک لا تلق دهرک ما دام یصحبو فیه روحو بدن الا غیر مختلف تا روح در بدنداری مادامی که روحت و بدنت با هم دیگه همراهند. به دهر و روزگار اعتنائی مکن یعنی همه چیز حل میشه هنوز زنده ای. هنوز خب اینجا هم اگر دقیق داشته باشیم این کلام رو هم نمیشه تصدیق یا تکذیب کرد. داره میگه لا تلق دهرک بر نهی میکنه. متوجه شدی الان تا اینجا کلام؟ غیر مقتدری یعنی غیر یعنی بی باک، بی پرو، بی متوجه شدید؟ پس این مثال ها از چندون به بعد از چهارون به بعد نمیشه اینا رو متصفه به گوینده شنو به کذب و صدق کرد چین اینا از حصول خبر یا عدم حصولش خبر نمیدند بلکه اینا دارن امر میکنن یا نه میکنن خب اینجا ای کارالوته نگفته انواع انشا چه هستن؟ در درسای جلوتر اونا رو میاره اینجا فقط برای ما توضیح داده بود که کلام یا خبر تو یا انشا که خودش تقسیم بندیهاش رو در درسای جلوتر میاره نه دیگه این مرتبطه با خب بعضی از اولون مرتبطن هم به همه چیز دیگه